با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی با یک داستان دیگه در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید اسم داستانمون هست چرا دریا شور است یکی بود یکی نبود در زمان گذشته دو برادر با همدیگه زندگی میکردن که یکیشون سربتمند و دیگری فقیر بود. یه سال موقع کریسمس برادر فقیر که حتی یه تیکه نون با گوشتم تو خونش نداشت بیشه برادر ثروتمندش رفت و ازش خواست که برای کریسمس چیزی بهش بده. این اولین باری بود که از برادرش خواهش میکرد که چیزی بهش بده. و برادر ثروتمندم از این کارش خوشش نیومد. برادر ثروتمند گفت: اگه کاری رو که میگم انجام بدی، یه رونه کامل گوسفند بهت میدم. برادر فقیر ازش تشکر کرد و قول داد که هر کاری اون بگه انجام بده. برادر ثروتمند گفت: این رونه گوسفنده. تو باید اون رو به خونه مردگان ببری و به اونها بدی. برادر فقیر گفت باشه این کار رو انجام میدم. وران گوسفند رو برداشت و به راه افتاد. اون تمام روز رو در راه بود و اوایل شب به جایی رسید که نوری ازش بیرون میتابید. مرد فقیر با خودش گفت احتمالا جایی که دنبالش میگردم همین جایه. پیرمردی مردی با ریش های بلند سفید بیرون ایستاده بود. مرد فقیر بهش گفت اصر بخیر. پیرمرد گفت اصر تو هم بخیر. بگو ببینم این موقع شب اینجا چیکار داری؟ مرد فقیر جواب داد من میخوام به خونه این مردگان برم. البته اگه راه رو درست اومده باشم. پیرمرد گفت درست اومدی همینجاست. وقتی داخل بشی همه میخوان این رونه گسفند ازت بگیرن و چون معمولا گیرشون نمیاد که بخورن. اما تو نباید گوشتو به اونها بفروشی مگه اینکه اون آسیاب دستی رو که پشت دره بهت بدن وقتی بیرون اومدی بهت میگم که اون آسیاب به چه دردی میخوره وقتی مرد فقیر وارد اونجا شد اوضا درست همونجوری بود که پیرمرد گفته بود همه افراد از بزرگ و کوچیک دورش جمع شدن و میخواستن رونه رون گوسفندو ازش بگیرن مرد گفت من باید این رون رو برای جشن کریسمس به خونه ببرم ولی حالا که شما اون رو میخواید به شما میدم البته اون رو به شما نمیفروشم و به جای گوشت اون آسیاب دستی رو که پشت دره باید به من بدید اونا اول حرف مرد فقیر رو گوش نکردم و بازم برای گرفتن رون گوسفند باش سرکله زدند. ولی مرد فقیر روی حرف خودش پا فشاری کرد و گفت حتما باید آسیاب دستی رو بگیره خلاصه مرد فقیر آسیاب دستی رو گرفت و بیرون اومد و از پیرمرد مرد طرز کارش رو پرسید و بعد به سرعت به طرف خونه براه افتاد ولی خب متاسفانه بعد از ساعت دوازده شب که کریسمس بود به خونه رسید زن پیرش بهش گفت معلومه تا حالا کجا بودی؟ من اینجا خیلی منتظرت شدم تا کریسمس رو با هم باشیم. مرد گفت من نتونستم زودتر خودم رو برسونم و باید کار مهمی رو انجام میدادم. حالا این رو ببین. بعد آسیاب دستی رو روی میز گذاشت و از اون آسیاب جادویی به ترتیب یه چراغ، یه رومیزی، گوشت و نوشیدنی و خلاص هر چیزی رو که برای شام کریسمس لازم داشتن درخواست کرد. زن که می دید همه این چیزا یکی بعد از دیگری ظاهر میشه گفت که کافیه و از مرد خواست که بگه این آسیاب رو از کجا آورده اما مرد گفت مهم نیست که من این رو از کجا آوردم فعلا که می بینی برای ما وسیله خوبیه و تو نباید این خوشی رو تلخ کنی. خلاصه مرد مدام چیزای مختلف از آسیاب دستی میخواست خواست. چند روز بعد هم همه دوستاش رو به یه مهمونی دعوت کرد برادر ثروتمند وقتی دید که وضع برادرش خیلی خوب شده خیلی راضی و خوشنود نبود و با خودش فکر کرد که شب کریسمس اونقدر فقیر بود که از من میخواست یه چیزی بهش بدم ولی حالا وضعش اونقدر خوب شده که فقیر و پولدار رو به خونش دعوت میکنه اون به برادرش گفت به خاطر خدا به بگو که این همه ثروت رو از کجا آوردید؟ برادری که قبلا فقیر بود گفت از پشت در. برادر ثروتمند من چیزی از حرفش نفهمید. عصر اون روز دوباره همین جمله رو پرسید. این بار برادر صاحب آسیاب دلش نعیمد که جواب درست نده و گفت این وسیله‌ای که همه این خوشبختی ها رو برای من به ارمغان آورده و آسیاب رو آورد و به برادرش نشون داد و دوباره از اون آسیاب چیزهایی درخواست کرد. برادر سربتمند خیلی اصرار کرد که آسیاب رو بهش بده. صاحب آسیاب هم قبول کرد اما به این شرط که مقداری پول به خاطر اون آسیاب بهش بده و تا مدتی هم آسیاب پیش خودش بمونه. مرد صاحب آسیاب با خودش فکر میکرد بالاخره در این مدت میتونم به اندازه چند سال چیزهایی رو که لازم دارم از آسیاب درخواست کنم در این مدت آسیاب خیلی کار کرد وقتی فصل درو رسید برادر ثروتمند اومد و آسیاب رو گرفت اما از برادرش نپرسید که چطوری باید با این آسیاب کار کنه حدودای عصر برادر سروتمند آسیاب رو برد. اما نزدیکای صبح وقتی که دیگه از دست اون کلافه شده بود زن برادرش رو خبر کرد تا اون رو از کار بندازه. موقع مرد سروتمند آسیاب رو روی میز آشباز گذاشت و گفت لطفا ماهی و سوپ و کمی شیرینی فقط خیلی زود. به این ترتیب آسیاب شروع به تحویل دادن چیزهایی کرد که اون خواسته بود. خیلی زود همه زرفا پر از ماهی و سوپ شیر شد و بعد همه آشپسکونه پر شد. مرد هر کاری کرد که آسیاب رو متوقف کنه نتونست. تمام سعی خودش رو کرد ولی فایده ای نداشت و آسیاب همین جوری داشت براش غذا آماده می کرد. خیلی زود اونقدر سوپ زیاد شد که مرد نزدیک بود در سوپ غرق بشه. مرد خودش رو به در رسوند، در رو باز کرد ولی این کارم فایده نداشت چون در مدت کمی اتاقهایی دیگه پر از سوپ شیر شد. اون از این اتاق به اون اتاق فرار می کرد اما غذاها به سرعت به دنبالش می اومدن. شرایط وحشتناکی پیش اومده بود. خدمتکاران که اربابشون به اونها قول داده بود، اون شب سوپ شیر بهشون بده منتظر بودن که اون برای شام صداشون بزنه ولی چون دیدن خبری نشد خودشون به راه افتادن تا به خونه برن وقتی به کلبه نزدیک شدن دیدن که رودی از سوپ شیر اونجا ربون شده و مرد در جلوی اونا مشغول دویدن و فرار کردنه مرد در حالی که به طرف اونها میدوید فریاد میزد اگه هر کدومتون ست تا شکم هم داشتید، بازم این سوپ زیاد بود. موازب باشید در این سوپ غرق مشید. برادر فقیل هم که از این ماجرا با خبر شده بود، اومده بود تا ببینه چه بلایی سر برادرش اومده. برادر غرق شده در سوپ ازش خواست که به خاطر خدا کاری کنه که آسیاب از کار بیفته. اون به برادرش گفت اگه این آسیاب یه ساعت دیگه کار کنه، تمام این سرزمین در سوپ شیر غرق میشه برادر بزرگتر پول آسیاب رو به برادر فقیرش نداده بود در اون لحظه برادر کوچیک گفت که تا پول اونو نده آسیاب از کار نمیفته به این ترتیب برادر فقیر تونست هم پول به دست بیاره و هم آسیابش رو مدت زیادی نگذشته بود که اون تونست مزرعهای بسیار قشنگتر از مزرعه برادرش درست کنه این مزرعه که کنار دریا بود از شدت زیبایی و پرباری از دور میدرخشید آسیاب اونقدر اونو پلار کردش که اون حتی زمین خونش رو هم از طلا زرپر کرد هر کسی که از اونجا میگذشت توقف میکرد تا با صاحب ثروتمند اون مزرع زیبا صحبت کنه و همه میخواستن که اون آسیاب عجیب رو ببینن چون حرفایی درباره اون شنیده بودن. خلاصه شهرت این آسیاب همه جای دنیا پیچیده بود و دیگه کسی نبود که درباره اون آسیاب چیزی نشنیده باشه. مدتها بعد از این ماجرا، روزی یک کشتی به اونجا اومد تا اون آسیاب رو ببینه. اون از صاحب آسیاب پرسید که آیا این آسیاب میتونه نمک تولید کنه یا نه. صاحب آسیاب رواب داد بله میتونه. وقتی این حرف رو شنید خواهش کرد که آسیاب رو بهش بده. اون که کارش تجارت نمک تو سراسر جهان بود با خودش فکر کرد که با داشتن این آسیاب مشکلاتش حل میشه. مرد اول نمیخواست آسیاب رو به ناخدا بده ولی چون اون زیاد اصرار کرد صاحب آسیاب قبول کرد که اونو به ناخدا بفروشه و پول خوبی در برابرش بگیره وقتی ناخدا آسیاب رو گرفت فوراً اونجا رو ترک کرد چون میترسید مرد نظرش تغییر کنه اونم یادش رفته بود که از صاحب آسیاب بپرسه که چجوری اونو متوقف کنه و چون عجله داشت که زودتر به کشتیش برسه از اونجا دور بشه. وقتی ناخدا کمی از مدره دور شد روی دریا شروع کرد به دستور دادن به آسیاب. اون گفت به من نمک بده. فقط نمک و نمک هرچه سریتر بهتر. بعد آسیاب شروع کرد به تولید کردن نمک. مثل آب از درونش نمک بیرون میریخت. وقتی کشتی ناخدا پر از نمک شد اون از آسیاب خواست که متوقف بشه ولی آسیاب همچنان داشت کار خودش رو میکرد. هرچی از آسیاب خواست که کارش رو خاتمه بده فایده نداشت. آسیاب اونقدر نمک تولید کرده بود که کشتی پر و پر و پرتر شده بود و بالاخره در دریا غرب شد. این آسیاب هنوز در کف دریا هست و هر روز نمک تولید میکنه، به همین علت آب همه دریاها ها شوره امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشیم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگر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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسان داستان‌های صوتی